بسم الله الرحمن الرحیم در درس قبلی امر امرو و در این درس النهی و النهیو استدعا و بالقولی ممن هو دونه عرا سبیل الوجوبی نهی طلب کردن ترک هست با قول نه با اشاره ممن هو دونهو طلب کردن از کسی که پایین ترک از طلب کننده باشد چون اگر مساویش باشه بهش میگن التماس و اگر طلب ترک کند کسی رو که بالاتر از خودشه بهش میگن دعا مثلا ما به الله بگیم که پروردگارو این کارو نکند بهش این موقع دیگه بهش میگن دعا دیگه نه نیست پس استدعاء کردن طلب کردن ترک با قول از کسی که پایین است علا سبیل الوجوب به شکل وجوبی و الزامی. چون اگر شما یک کسی رو یک چیزی طلب کنید به شکل وجوبی نباشه اون موقع دیگه نه نیست حرام نیست بلکه میاد به درجه تر است نهی که مون کراهت باشد و پایین با ترش. و على فساد المنهی عنه و الناهی دلالت بر فاسد بودن منهی عنه میکنه جایی که نهی اومده شو این کارو نکنید در شریعت اگر شخص انجامش داد فاسد است خب البته به صيغهای دیگه‌ای هم وارد میشه وگاهی وجاهی ناهی فساد رو این رسوند یعنی اقتضای فاسد بودن نمی کند. زمانی که دلیلی وجود داشته باشد مثلا در حدیثی که ابو از رسول الله صلی علیه و وسلم روایت می کند که شما شطور و گزفند رو مسرات نکنید یعنی نگذارید فسانهاشون پر شیر بشه تا چند روز و بعد برای فروش ببرید مردم فکر کنند اینها شیری هستند در حالی که چنین نیست هر کسی این کارو کرد خریدار بعد از این اختیار داره میتونه برش داره یعنی میتونه معامله رو به هم نزنه پس این نهی دلالت بر فساد نکردگی دلالت بر فساد کرد که همچنین اختیاري نداشت وثاريد صيغه الامر و المراد به الاباحة. گاهی موقع سیره امر میاد اما منظور از امر وجود نیست و بلکه مباح بودن هست. او یا یا گاهی موقع امر برای تهدید به میره دلالت بر وجوب کند مانند قل تمتعو فا این الى النار بگو بهره ببرید بازگشت شما آتش هست جهنم هست خب اینجا تمتعو که فعل امر هست جمع مذکر هست دلالت بر تهدید دید میکند اول تسویتی یا دلالت بر تصویه برابر بودن، مساوی بودن، فصبیرو اولا تصویر، فصبیرو فعل امره، اینجا دلالت بر تصاویم کنه، یا برای تکوین، ایجاد از عدم، ایجاد از نبودن از عدم، کنو قردتا خاصین باشید میمون، اینها بحث های بودند که مرتبط به امر و نه بودن البته در آخر بحث نهی مسائلی در رابطه با امر و ذکر کرده بود که امر گاهی موقع سیغه رو مبینی با سیغه امر وارد شده ولی منظور از آن وجوب نیست مباه بودن است یا تهدید هست یا تصوی یا تکین پس در مورد نحی ما چیز خاصی که خوندیم یکی تعریفش بود. یکی این که گفته بود نه دلالت بر باطل بودن و فاسد بودن اب عمل منهی انه می کند مگر جایی که دلیل دیگری وجود داشته باشد و دلالت بر عدم فاسد بودن اون عمل کند مانند حدیث مسررات